بسم الله الرحمن الرحیم بحث بعدی بحث قیاس و اما القیاس و اما قیاس قیاس بعد از قرآن سنت اجماع چهارمین دلیل از ادله فقه می باشد به نزد جمهور اهل سنت ظاهریه قیاس رو قبول ندارند در این رابطه ابن حزم کتابی نوشتن به نام ابطال القیاس اما قول صحیح قول جمهور میباشد قیاسی که قياس. از ادله میباشد چون نظیر حق حق است و نظیر باطل باطل است و اما القیاس اما قیاس که اینجا معنی اصطلاحشو میاره در لغت به معنی اندازه گیریه فهو رد الفرع الى الاصل فی الحکم علت تجمعهما میگه قیاس بازگرداندن فرع به اصل در حکم به فر حکم اصلو بدیم با علت تجمعهما بسبب علتی که این دوتارو با هم جمع میکنه. بخاطر اینکه که اصل و فرع علت مشترکی دارد حالا اصل چی هست؟ فرعه هست؟ اصل اون حکمی هست که نس براش وجود داره در قرآن و حدیث حکمش ثابته مانند مثلا در بحث ربا گندم برای گندم نس داریم حدیث داریم که شما گندم رو در مقابل گندم نفروشید مگر به شکل مصابی یعنی اضافه نگیرید اگر بگیرید این ربا هست خب این اصل هست ولی برای برنج ما نس نداریم تو آیات و احادیث نیومده حالا برای اینکه بیایم بیاییم خب حکم اینو پیدا کنیم میخوایم ببینیم آیا واقعا اون علتی که به خاطرش در گندم ربا اومده در این برنج وجود داره یا نه اگر داشت قیاس میگیریم و حکمشو پیدا میکنیم از حکم اصل در این مثالی که گفتیم گندم اصل بود برنج فرع بود علت هم باید در این دوتا باشه تا بشه از هم دیگه قیاسشون گرفت علتی که برای گندم بیان میکنیم میگن چون خوردنی و کل شدنی یا وزن شدنی است. همین علت بینی در برنج وجود داره لذا حکم ربا که در گنجم وجود داره در برنج میاد پس اصل، فرع، علت مشترک که همون جامعه مشترکی بین این دوتا و حکم مثال دیگر برای خمر نست داریم ولی برای فلان قرس ساخت فلان کشور که علت به همون علتی که خمر حرام شده که مست کنندگی در این قرص وجود داره. به اون میگن اصل به این میگن فر. علت مشترک مست کنندگی و اسکار هست و حکم دوتا دو هم همون حرمت میشه. خب با این پس قیاس چارتا روكن داري فارع أصل، حكم إلات وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام تخسيم شبس قسم قياس إلات وقياس دلالة وقياس شبه يك قياس إلات دو قياس دلالات سي قياس شبه فقياس الإلات تعرف شمي كوني قياس إلات كون ناس ما كانت الإلات فيه موجبة للحكم قياس إلات ناس علت اقتضا کننده حکمه یعنی علت جامعه مشترک بین اصل و فرقه خود علت خود علت مثل دو مثالی که مثل شراب و خمر و این قرسی که مثال و مانند فلا تقل له ما به پدر و مادرت اف نگو زدن نیومده اینجا خب قیاس زدن بر اف کردن. اینجا خود علت است که جامعه بین اصل و فره هست این دیگه خیلی واضح است. پس در قیاس علت بین اصل و فره با یک وصف ظاهر منضبط با علت جامعه هر دوتا هست وقياس الدلالة قياس الدلالة كلهم هست هو الاستدلال بأحد النظيرين الآخر استدلال كاردان بيكي أزدو نظير شبيه بر ديگري وهو ادامه ده أن تكون الإلت دالة على الحكم إلت دالة برحكم هست يعني خود إلت جامعه بين أصل و فرنست بلك دال هست ولا لا موجبه موجبتن للحکم و خود ایلت اقتضا کننده حکم نیست مانندیم که در شراب, بوی در شراب بوی شراب بوی شراب جامعه بین اصل و فرع بشه یا اثری از آثار حکم یا اثری از آثار یا لازمه ای از لوازم بله پس در قیاس دلالت جمع بین اصل و فر با دلیلی از علت نه نخوده علت مانند بود در شراب که بود در شراب خود علت نیست علت مسکنندگیه بو یکی از دلائل از علامات اون هست به این خاطر میگن دلالت قیاس دلالت یا اثر علت مثلا قصاص در قتل عمد ادوان کسی که شخصی رو از روی عمد عدوان بکشد قصاص میشه علت چه هست که قصاص میشه؟ علت خود همین قتل عمد و عدوانه حالا اگر اومدند یکی رو با چیز سنگینی کشتند آیا میشه قیاس گرفت اون شخصی رو که با فرزان کلاشینکوف بکشن قیاسش بگیرند با قتل به وسیله چیز سنگین و بگند علت به خاطر جامعه بودن بین اون دوتا گناه هست اگر جامعه بین این دوتا گناه باشه اون موقع بش میگند قیاسی دلالت چرا؟ چون آنچه که بین این دوتا جمع کرد اثر علت است علت قتل بود اثرش هم همون گناهه اسم پس در قیاس در قیاس دلالت با ملزومات علت یا با اثر علت یا با حکمی از احکامات جامع هست به عبارتی دیگر به عبارتی دیگر بر علت نس نیومده یعنی علت در نس نیومده یکی از لوازم علت در نس اومده به این خاطر میشون میگن قیاس دلالت مانند به سالی زدیم که گفتیم قتل با چیز سنگین سبب قصاص میشه مانند قتل به حسیله چیز سرتیس. و جامعه بين هر دو همون گناه هست که اثر علت هست و خود علت خود قتل هست خود علت قتل عمد و ادوان هست اما قیاس شبه و قیاس الشبهی هو الفرع المتردد بين اصله قیاس شبه فرعی هست که متردد هست متردد هست هو الفرق المتردد و بین فرعی هست که متردد هست بین دو اصل یعنی چی؟ یعنی ما یه فرعی داریم از یه طرفی، از یه جهتی شبیه با یه اصلی هست و از جهتی دیگر با اصلی دیگر ما دو تا حکم دار داریم که نسشون اومده به میگن اصل از یه جهتی شبیه اینه یا از یه جهتی شبیهون. اصولیون این مثالو رو براش بیان برده ای کشته شده حالا آید دیه براش گرفته بشه یا قیمت میگن برده از جهتی شبیه انسان آزاده هست از این جهت که انسان هست مکلف هست ساب داده, دا داده میشه اقووت داده میشه مسائل شرع اوامر و نواهی شرع برش لازم هستن و از جهتی دیگر شبیه بهایم هست از این جهت که فروخته میشه داده میشه پس مترددک به اینی که قیاس گرفته بشه یا به اون اینو میگن قیاس الشبه خوب و قیاس الشبه هو الفرع المترددو بین ال... اصلینی قياس شبه فرعي است که متردد است بین دو اصل حالا به کدام یک الحاق میشه و به اکثرهم شبهن به الحاق میشه به مونی که باشه ولا و إليه وبسمت قياس و شبه رفت نمیشه رجونه میشه مع امکان ما قبله تا زمانی که امکان بما قبل باشه یعنی به قیاس دلالت قیاس علت پس این قیاس یعنی قیاس ضعیفتر از دو نوع قبلش هست چون بین فر و اصل علت مناسبی وجود ندارد. حالا که اومد قیاس رو تعریف کرد بعدا اومد اقسامش رو بیان کرد البته قیاس از های مختلفی تقسیم بندی داره اینجا ذکر نکرده ما فقط از جهت قوت تقسیم بندی رو ذکر میکنیم چون در بحث ترتیب ادله به کار میآید در بحث ترجیح به کار میاد قیاس به اعتبار قوت که کتاب نیاورده بر دو نوع از قیاس جلی و قیاس خفی یعنی در بحث قیاس نیاورده است این بحث رو قیاس جلی اون هست که علتش در نس اومده باشه یا علتش بین فقها متفق باشه اما قیاس خفی اون است که علتش با استنباط و اجتهاد ثابت شده باشه مثل همین مثلا ربای در خوردنی ها در نس نومده که علت حرمتش چه است و روی علتش اختلاف دارد. حالا که تا اینجا کار اومدیم شروط فرع اصل و حکم و علت رو میگه البته کامل نمیگه در جهت در اندازه حوصله کتاب که برای مبتدی ها نوشته شده است میگه. و من شرط الفرعی ان یکون مناسبا للاصل و از شرط فرعه همین هست که مناسب برای اصل باشد یعنی علت حکم وصف مناسبی هم برای اصل باشه هم برای فره مانند توم که وصف مناسبی است برای قیاس گرفتن برنج از گندم که قبلا مثالش زدیم ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين بين الخصمين والشرط الاصل همين هست كي شرط حكم الاصل ذارواق شرط حكم الاصل همين هست كي ثابت بشي با دليل كي متفق هست بين دو طرف يعني بين يشافئيو حانفيت بینیه حنفی و حنبالی. اون حکم اصل باید بايد دليلي بین بين هردوتا متفق عليه هست مثل قرآن، حدیث و اجماع ثابت شده باشه. بله. با و من شرط الّتي أن تطرد في معلولاتها شرط حکم اصلو گفت حکم اصل, اصل باید با دلیل متفق علیه ثابت شده باشه و از شرط علت این است که ان تقدرد فی معلومات معلولاتها اعتراض باشه در معلولاتش یعنی چی اعتراض به این معناست که یعنی هر وقت هر وقت علت جای یافت شود در هر حالتی حکم هم باید پیدا بشه. در هر کجا اسکار و مسکنندهی یافت شد، حرمت هم باید موجود باشه. هر کجا که قتل عمد از روی عدوان پیش اومد، قصاص هم باید پیش بیاد. چطور؟ اگر در حالتی از حالات پیش نیومد، اون موقع میگه، اینجا علت اتراض نیست و درش نقص پیش میاد پس و من شرط العلت ان تضطرد فی معلولاتها شرط علت ناس که اطراد باشه یعنی هر کجا که علت یافت شد در هر صورتی از صورتها حکم هم باید یافت بشه مانند اسکار مسکنندگی کجا که یافت بشه باید حرمت یافت بشه و منظور از معلولات یعنی احکاماتی که بهوسیله این علت تعلیل شدند خوب ماننده حرمت ربا در گندم که علت شد چه می بعضی از فقها ها کل بودن و خوردنی بودن، خوراکی بودن فلا تنتقض و ولا معنی این اتراد نقص نباید بشه این علت این اتراد نباید نقص بشه یعنی در حالتی از حالات می بینیم که علت وجود داره اما حکم وجود نداره. اگر اینجور بود اون موقع نقص میشه معلف این ناقص بودن حالا چه به خاطر باشه؟ چه به غیر مانعی به شکل عمومی گفته که میگه در این حالت قیاس فاسد میشه. گفته بود از شرط علت اینه که اتراد باشه. یعنی هر کجا علت یافت شد، حکم باید یافت بشه و اگر در حالتی از حالات یافت نشد، ناقص میشه حالا چی با علت چی با, با مانع باشه چی با غیر با یه مثالی میگیم و اینجا اختلاف بین فقها رو توضیح میدیم علت قصاص در قتل علت قصاص مون قتل عمدی از روی عدوان هست. میگه هر کجا قتل عمد ادوانی پیش اومد باید قصاص پیش بیاد حالا با اون تفصیلات خودش که اولیاء دم کاری به اون مسای فعلا نداری اما در حالتی از حالات ما میبینیم که قتل از روی عمد ادوان بوده اما قصاص پیش نمیاد در شریعت، چه زمان؟ زمانی که پدر پسرش رو بکشه فقها میگن پدر قصاص نمیشه پس اینجا اتراد نشد و نقص شد ولی آیا این نقص به خاطر مانعی هست یا نه؟ میگیم گروه از فقها میگن چون به خاطر پس اینجا نقص پیش نمیاد مانع چاست مانع پدر بودنه یعنی پدر بودن مانع از قصاص شد ولی گروه دیگر میگن نه اتراد نیست درش نقص پیش اومده و قیاس اینجا فاسد میشه پس نقص یکی از فاسد های یکی از قواده, قواده قیاس هست ولی با این اختلاف بین فقها که آیا این از روی مانع بوده یا نه که خود نویسنده ما رحمه الله کاری به مانع و غیر مانع نداشت و گفت که این اتراد نباید نقص بشه بس و من شرط الاله أن تطرد في معلولاتها الشرط الاله نک اعتراض باشه در معلولاتش فلا تنتقدوه لفظا ولا معنا نقص نشي لفظا و معنا بله گفت مثال توضیح دادم که منظور از نقص چه هست در تمام صورت هر ها کجا كي ایلت یافت شد حکم یافت بشه و من شرط الحکم الان شرط بشرت های حکم رسیده و من شرط الحکم ان یکونه مثل الالتی فی النفی والا اثبات و از شرط حکم همین هست که مانند علت باشه در نفی و در اثبات یعنی چی؟ یعنی هر کجا که ایلت یافت شد حکم یافت بشه علت که نبود حکم نفی بشه علت که بود حکم ثابت میشه پس از شرط حکم همین است که مثل علت باشه در نفی و در اثبات پس حکم طابع علت باشه در وجود و در عدم اگر علت یافت شد حکم یافت بشه و اگر علت نف شد حکم نفی بشه چرا چون اون حکم بخاطر اون علت اومده الان که علت وجود نداره حکم هم باید دیگه وجود نداشته باشه مست کنندگی باشه اون چیز باید حرام باشه مست کنندگی که نبود حرمت هم نفیه بشه والعلت هی الجالبةو للحکم میگه علت است که حکم و جلب میکنه یعنی الله متعال این حکم به خاطر این علت قرار داده و الحکم هو المجلوب للعلت و حکم مجلوب علت است یعنی به خاطر علت اومده است تا اینجای کار بحث قیاس مختصران آورده بود تمام شد موفق و پیروز باشید.